است که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد صد نام فرستادم و ان شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد سوی من وحشی صفت عقل رمیده آهو روشی کبش خرامی نفرستاد دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست و از آن خط چون سلسل دامی نفرستاد فریاد که آن ساقی شکر لب سرمه دانست که مخمورم و جامی نفرستاد کندان که زدم لاف کرامات و مقامات هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد حافظ به ادب باش که واخاست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد